خواشنم خب عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید روی خط تلفن آقای علی آزاد هستند که یکی از فعالان سیاسی و همینطور برگزار کننده تظاهراتی در همبستگی و حمایت از احتساب زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که بعد از امروز شنبه چهاردهم ژانویه از ساعت یک بعد از ظهر تا ساعت 2:30 در مرکز شهر کپنای برگزار خواهد شد. آقای آزاد سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما. من هم قابلن صبح خیر به شما میگم و درود و سلام به شنابندگان شما میخواستم راجع به تزارات بد از دار امروز از شما بپرسم توضیح بدید که چه برنامه ای هست و در کجا انجام میشه بله اعتصاد همون که در خبرها و مطبوعات داخل خارج منعکس شده مدتی هست که اتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف ایران از اوین و گوهردشت تا تبریز و رومی و شعرهای دیگه برگزار شده و این به صلاح اعتصاب غذاب خواسته ها مطالبات بسیار مشخص و روشنی رو دارند در رابطه با بیحقوقی و اذیت از آزارهایی که در داخل زندان متحمل شدند، در اعتراض به این شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان ناچار شدن به سللا از جان و زندگی و سلامت خودشون هزینه بکنند و دست به اعتتصااب غذا زدن اعتصاب غذا متاسفانه به مدت طولانی شده و به سلامتی و جانشون در معرض خطر هست در نتیجه انکاس این در مطبوعات و رسانه ها و سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری خارج و داخل ایران گسترده بوده و در نتیجه این برخی از مطالبات و قبول کردن اما همچنان اون پایه های اصلی مسئلی که مطرح شده برجاس و در نتیجه این غذا کمکان در داخل زندان ها وجود داره و حتی گسترش پیدا در همین رابطه ما هم به عنوان بخشی از پوزیسیون خارج کشور به عنوان بخشی از ایرانیانی که در کوپناک هستیم و نسبت به سرنوشت این سیاسی نسبت به سرنوشت خانواده های ن نگرانی داریم در نتیجه به صلاح گروه های سیاسی مختلف چپ ایرانی مقیم کپنارد تصمیم گرفتند که امروز یک اکسیون اعتراضی در حمایت و همبستگی با این زندانیان سیاسی و خانوادای اونا در مرکز شهر در واقع در گوگده کپنارد برگزار بکنه در رابطه با برگزار کننده های امروز چه گروههایی برگزار کردن برنامه امروز ها؟ از طرف کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دامارف هست، کانون پوینده هست و حزب کمونیست ایران. در رابطه با موضوعات روز ایران، در رابطه با رئیس تشخیص مسئله نظام هاشمی رفسنجانی که روز سشنبه تحشیش و پیکرش، نظر شما رو میخواستم در رابطه با فوت رفسنجانی هم بپرسند که نظر شما چیه؟ من فکر کنم رفسنجانی به اندازه کافی در رد پای اون در تمامی جنایت های چل ساله جمهوری اسلامی وجود داره و خودش هم منکر این نیست و بسیاری از طرفداران رفزنجانی منکر این نیستند که نقش و رنگی رو در قتل‌های زنجیری در ترورهای خارج از کشور در جنگ خونینی رو که اوایل دهه در دوره انقلاب تا دهه 60 برجا بوده همه اینا نگاه بکنیم پای ردپای رفسنجانی در یکایی که این جنایت ها هست و این شخص چهره ای شناخته شده و بنیانگزاران جمهوری اسلامی هست همانقدر که خمینی خامنه ای و رفسنجانی و سایر شرکایی که چه مردن چه هستند در این جنایت عظیم در این نسل کشی به خصوص نسل کشی ده شریک است از این نظر مردن او یا زنده بودن او چیزی از جرم و جنایت اون کم و نمیکنه فقط پرونده این جنایت از طرف هاشمی رفزنجانی حداقل بسته شد متاسفم که چی فرصت به برای نیروهای انقلابی جریانات مترقی جریانات حقوق و بشر و مردم ایران کوتاه بوده که نتونستن چنین جنایتگارانی رو در دادگاه عادلانه محاکمه بکنند و تمامی پرونده ها و اصراری رو که در این چند سال زرفسنجانی و باند او و رژیم او مرتکب شده رو محاکمه بکنند و به صورت مستند بذارند برای تاریخ و غذاوت مرد. از این نظر جای تصفه که چنین فردی بدون اینکه که محاکمه بشه فوت کرده و بسیار از ناگفته ها که میبایستی برای نسل بعدی درس عبرتی باشه به خاک سپرده شد. سپاسگزارم از شما جناب آزاد همینطور اعلام میکنم که بعد ظهر امروز ساعت یک تا دو نیم در مرکز شهر کوپناک تظاهراتی در همبستگی و حمایت از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است شما محبت کنین در آخر بگید که کجای مرکز شهر آهو... کوپناک است برگزار میشه در کلتوید هست که ابتدای گوگیده, گوگیده، کپناک هست نزدیکترین ایسکا نورپورت استاشون هست که حدوداً دو دقیقه سه دقیقه با نورپورت استاشون فاصله ده خیلی سپاسگزارم با امید دیدار در بد از زور امروز ممنون امیدوارم که شما موفق باشید و ویکند خوبی رو داشته باشید